دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت یارب مگیر چه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت سید قرم نداشت بر من جفاز بخت من آمد وگر نه یار هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت با این همه هران که نخاری کشید از او هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت ساغی بیار باده و با محتسب بگو انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت هر راه رو که ره به حریم درش نبورد مسکن برید وادی و ره در حرم نداشت حافظ ببر تو گوی فتا که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت